بسیار خوب حالا که تا به اینجای کار اومدیم و پایه های هیبنوتیز رو شرط دادیم در واقع ریشه های اون رو اینکه که هیبنوتیز مثلا بر چی استواره، چجوری کار میکنه و مهمتر هم همه تونل های واقعیت رو گفتیم حالا که تا اینجا اومدیم ممکنه خیلی باشن که بگن خوب حالا احتمالا از اینجا به بد کلاس جالب میشه نکاتی که گفته میشه دیگه عملی میشه اجراش کرد و اینها و تادید درست میگید اما چیزی که معوللا از اد همه میره اینه که اگه شما تا همینجا عمیق پیش اومده باشید، باید بتونید ح این پایه ها رو روی یک فرد و روی نگاه خودتون حالا حین هپتیززم خودتون یا دیگران اجرا کنید و اگه تا به اینجا کار رو درست انجام ندید، اصلا دیگه گوش دادم به بقیه کلاس هم اصلا سودی ندارینی شما باید، تا به اینجای کار نگرش های درست فهم هپنویز نمیدونم نحوه اعمالش اصلا همه اینها رو باید بدونید اینکه تونل واقعیت چیه؟ چه جووری اینکه جهانی در واقع دائما تونل های واقعیت رو شامل میشه این رو باید بدونید که حالا اصلا بتونید یک فرد با تکنیک های تری هینویز کنید یا خودتون رو. و من بسیاری ها رو دیدم که، به فرض تکنیک های مختلف رو بلدن ولی وقتی میرن اجراش کنن نمیتونن انگار و به خوبی برام واضحه که ریشش توی همون مسائل ابتدایی و پایه هست که معمولاً خیلی ها دست کم میگیرن یا خیلی ها میگن خب حالا اون تکنیک های پیشرفته مهمتره نه واقعا اینطور نیست یعنی دقیقا این پله هایی که باید تی کنید و حتماً را توصیه میکنم حتی دروس قبلی رو چندین و چند بار مرور کنید تا اینکه توی مسائل بعدی و توی نکات پیشرفته تر که یه جورایی بر میگره به اینکه حالا چطور چه راههایی چه ابزارهایی چه تکنیکایی هست که میشه یه فرد رو به تونل‌های واقعیت مختلف برد یا خودتون رو در واقع به تونل‌های واقعیت مختلف برد حالا اینا مطرح میشه ولی خب تاکید شد که حتما باید اون پایه ها رو به خوبی یاد گرفته باشید